روزی بود و روزگاری. پادشاهی بود که پسری داشت. زن پادشاه عاشق پسرش شده بود و روزی پسر گفت اگه دست از سرم بر نداری به پادشاه میگم. زن پیش دستی کرد و رفت پیش پادشاه و گفت پسرت درباره من خیالای بد داره. پادشاه دستور داد جلاد بیا گردن این پسر رو بزن. وزیر و وکیلو اطرافیان پادشاه گفتن قبله عالم به سلامت، اونو نکش. از شهر بیرونش کن، بره توی کوه و بیابون سر به نیست بشه. از به پسر دادن و از شهر بیرونش کردن. پسر رفت و رفت و رفت تا رسید به قاری و همونجا موندگار شد. روزا به شکار می و می آورد و می و می روزی روباهی از اونجا رد میشد چشمش افتاد به استخونا و تیکه گوشتایی که روی زمین ریخته بود نشست شکمشو سیر کرد و با خودش گفت من اینجا میمونم اینجا حتما آدمی چیزی زندگی میکنه اصر پسر اومد و دوباره روباه و دید کمی از شکار خودش خورد و باقی و داد به روباه روز دیگه گرگی گذرش به اونجا افتاد دید روبا دم دهانه قار نشسته بود، تماشا میکنه گفت روبا برای چی نشستی؟ انگار امروز دنبال شکار نمیخوای بری روبا گفت شکار می خواهم چه من آقایی دارم که هر روز شکار میکنه کنم میاره اینجا و سهم منو هم میده. گرگ گفت میذاری منم اینجا بمونم؟ روبا گفت چرا نذارم؟ گرگم موندگار. شد اسب پسر برگشت دید یه گرگم اومده با خودش گفت این جونورها از کجا میان دور من جمع میشن باز کمی از شکار خودشو خورد و باقیشو به روباه و گرگ داد فردو بیشتر شکار کرد که جونورها گرسنه نمونه روز دیگه سگی رد میشد دید روباه و گرگ نشسته دم دهانه حرف میزنه. گفت آهای رفقا چرا نشستید؟ انگار امروز روزه گرفتید؟ گفتن نه رفیق ما آقایی داریم که هر روز شکار میکنه و میاره اینجا سهم ما رو هم میده و میخوری. سگ گفت میذارید منم اینجا بمونم؟ گفتن چرا سگ هم هموندگار شد. عصر پسر اومد و دید سگ هم کنار گرگ و روباه نشسته. فردا باز بیشتر شکار کرد که جونورها گرسنه نمونن و خودش رو نخورد. روز دیگه اوهابی از هوا رد می شود. دید روباه و گرگ و سگ بی خیال نشستن و حرف نزنن. گفت رفقا چرا بی خیال نشستید؟ انگار نمی امروز چیزی بخورید. گفتن ما آقایی داریم که شکار میکنه و میاره و شکم ما رو هم سیر میکنه. اقاب گفت میذارید منم اینجا بمونم؟ گفتن چرا نذاری؟ اصری پسر اومد دید مفتخورها چار تا شدن. با خودش گفت اینا از جون من چی میخوام؟ چند روزی گذشت. روزی رفت سنگی رو قلتوند و آورد و گذاشت. خودش رفت بالای اونو گفت آهای رفقا آیا این انصافه که همش آقا شکار بکنه و زحمت بکشه و ما بشینیم و بخوری گفتن رفیق پس میخوای چیکار کنی روبا گفت باید بریم دختر پادشاه رو برای آقا بیاری گفتن غیر ممکنه چطوری میتونیم دختر پادشاه رو بیاری روبا گفت شما برید مشتی منجوق رنگی و یکی دوتا زنگوله منگوله بیارید ببندید به دومه من تا به شما بگم. رفتم منجوق جمع کردن و یکی دوتا هم زنگوله گیرو بردن. بعد همه رو بستن به دومه روباه و اون رو آزیمندی کردن. روبا گفت همه هم من میریم به خونه دختر پادشاه. من از راه آب وارد حیات میشم. سگ و گرگ دم در وای و اقاب بالای حیات پرواز میکنه وقتی که دختر پادشاه بیرون اومد که منو ببینه اقاب اونو بر می داره و میبره پا شدن اومدم به خونه دختر پادشاه سگ و گرگ دم در وایسادن اقاب هم توی هوا روباه از راهاب وارد حیاط شد و شروع کرد به رقصیدن و ادا در آوردن کنیزی روباهو دید و و صدا زد که خانم بیا نگاه کن. یه چیزی توی حیات اومده که ببین چقدر قشنگه. خانم تا پاش به حیات رسید اقاب پایین اومد و اونو برداشت و به هوا بلند شد. روباهو سگ و گرگ هم فرار کردن و اومدن به قار. دختر پادشا رو گذاشتن توی قار. دختر ماتش برده بود که اینجا کجاست و اینا کی اصر دید هر چهارتا پا شدن و رفتن. پسر داشت برمیگشت که دید جونورا به پیشوازش اومدن. روبا جلو افتاد و رخص کنان آقا رو به قار برد. آقا تا دختر رو دید گفت دختر تو کجا اینجا کجا؟ دختر گفت من و اینا اووردن. حالا بشنوید از پادشاه. نشسته بود با زنش حرف میزد که خبر رسید پادشاه چه نشسته ای که دخترت رو اقاب برداشت و برد؟ پادشاه پیرزن خمر سواری رو صدا زد به اون پول داد که بره دخترش رو پیدا کنه. پیرزن سوار خمرش شد و اومد و رسید به نزدیکی های قار. خمرش رو جای زیر خاک قایم کرد و نشست سر راه پسر. عصر وقتی که پسر از اونجا گذشت دید پیرزنی سر راه نشسته. گفت. نه چرا تک و تنها وسط بیابون نشستی؟ گفت پسر جون با کاروان بودم که منو جا گذاشتن و رفتن. پسر دلش به حال اون سوخت و گفت پاشو بریم خونه من. زن من هم احتیاج به یه همنشین داره. روبا دید آقا پیرزنی رو میاره. چپ چپ به اون نگاه کرد. صبح پسر دنبال شکار رفت. پیرزن به دختر گفت دختر جون تو هیچ این دورو رو گشتی؟ دختر گفت نه من هیچ جا نمیرم. پیرزن گفت پس پاشو با هم گردشی بکنی. انقدر توی قار میشینی؟ دیق میکنی دختر. شدن و رفتن به گردش. گردش کنون اومدن و رسیدن به خمره پیرزن. دختر گفت نه, نه، این چیه؟ پیرزن گفت من چه میدونم دختر خودت نگاه کن ببین. دختر خم شد که توی خمره رو نگاه کنه، پیرزن خولش داد و دختر افتاد توی خمره. پیرزن فوری سر خمره رو بست و خودش هم نشست روی خمره و کوکش کرد و به هوا بلند شد. اصر پسر اومد و دید که روبا بی حال و حسل گوشهی کس کرده و خوابیده. از دختر و پیرزن هم خبره نیست. با خودش گفت بیچاره روبا حق داشته که دیروز چپ چپ نگاه هم کنه. پیرزن کار خودش رو کرده و دختر رو برده. باز دو سه روزی گذشته بود که روبا رفت سنگ و قلتوند و قلتوند و اوورد گذاشت گوشه ای و خودش رفت بالای اونو گفت آهای رفقا. خوب نیست آقا انقدر دلتنگ و قمگین باشه. ما نباید دست روی دست بذاریم و بشینیم. گفتن میگی چیکار کنی؟ کنیم؟ روبا گفت بریم باز هم دختر رو بیاریم. باز منجوق و زنگول منگوله به دوم روباه بستن و به راه افتادن. روباه از راه آب وارد حیات شد. سگ و گرد دم در ایستادن. آب هم بالای حیات چرخ میزد. از قضا کنیز دختر پادشاه رو عوض کرده بودن. که ناگهان چشمش افتاد به روباه. فریاد زد که خانم بیا نگاه کن یه چیز اومده تو حیات. چنان قشنگ میرخسه که نگو. دختر از پنجره نگاه کرد و روباهو دید. هر چیز سبک وزن و سنگ قیمت که دم دستش بود برداشت و بیرون اومد. آقا پایین اومد و اونو برداشت و برد. روباه از راه آب بیرون اومد و سگ و گرک هم دنبالش راه افتادن دختر رو باز اووردن و گذاشتن توی غار. اصر شد. وقت اومدن آقا روبا گفت رفقا پاشید بریم آقا رو پیشواز کنیم. پسر داش میومد که دید روبا دیگران رو هم به دنبال خودش راه اندخته و شنگول و منگول داره خیز برمی داره. اومد و دید که دختر توی قاره. پرسید که دختر تو کجا بودی؟ دختر گفت پیر زنگولم زد و برد. در 15 روزی گذشت پادشاه قشون فرستاد که پسر رو بگیره. گوشون اومد و اومد و سر راه پسر رو گرفت. دختر رفت بالای قار رو نگاه کردید که بله قشون زیادی سر راه و گرفته. خیلی ناراحت شد. پایین اومد. روبا تا دختر رو اینجوری دید رفت بالای قار که ببینه چه خبره. وقتی گوشون رو دید اومد پایین. عصری باز رفت سنگ و قلتند و قلتند و اوورد گذاشت گوشه ای و؟ خودش رفت بالای اون گفت آهای رفقا قصونه پادشاه سر راه آقا چادر زده که وقتی برمیگرده اونو بگیرن پاشید بریم آقا رو خودمون بیاریم همشون پا شدن و رفتن اونقدر رفتن که به آقا رسیدن پسر دید امروز از راه دوری به پیشوازش اومدن روباه جلو افتاد آقا رو از راه دیگه‌ای به قارو برد پسر دید دختر خیلی گرفته است. پرسید چی شده؟ دختر گفت مگه خبر نداری؟ قشون پدرم میخوان تو رو بگیرن. تو چطوری از دستشون در رفتی؟ پسر گفت روباه منو از راه دیگه ای دختر گفت معلوم نیست چی به سرمون بیارم. شب رو میخوابیم تا ببینیم صبح چی پیش میاد. وقتی که پسر و دختر خوابیدن روباه باستنگ رو آورد و رفت بالای اونو گفت، آهای رفقا، آقا و خانم خیلی دلتنگن، پاشید بریم قشون پادشاه رو پراکندی کنیم. بقاب تو چشماشونو درمیاری میاری، سگ و گرگ هم اونا رو خفه میکنن. من هم شروع میکنم به دریدن و خوردن. هر چارتاشون اومدن و رفتن وسط قشون. بقاب چشم همشونو در آورد. سگ و گرک هم گلوشونو رو گرفتن و خفشون کردن. روبا هم شروع کرد به دریدن و خوردن. بعد برگشتن و با خیال آسوده خوابیدن. صبح پسر بیدار شد و رفت بیرون که ببینه قشون توی چه حالیه. دید چه قشونی. همشون لط و پار شدن و افتادن. به دختر گفت. دختر تا قشون تازهی نیومده پاشو از اینجا در بری. برای خودمون خونه و زندگی درست کنیم. روباه و رفیقاش هم بیروزی نمیمونه. نگاه کن ببین چقدر و استخون براشون هست. هرچقدر بخورن بازم تموم نمیشه. پسر اسبش رو سوار شد و دختر هم به ترکش نشست. راه افتادن و سالهای سال با خوشی و کامیابی با هم زندگی کردن. کانال تلگرامی هزار افسان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 نشانی وبلاگ ما m r n d o s t